و آلقه طیبین اللهم یا اصلا به محمد دیگران بود از اخباری ها که در ما اینجور تلقی شده بود که قطع حاصل از به اینکار سنت کن نیست نیز یا قطع حاصل میشه راجبی این بحث ما یه نظر عبارات خودیشون رو خوندیم یه منشالله بحث های کنون چورانی هست یه اعنام بدیم خبیه منشالله بره بحث متولی میشه که خیلی امالا اینجا فرزند را یکی تیبای اوچن بیشن محله خودش یه نمونه بحث براحتیشون رو مطرح کردیم که ایشان برای اصول و ذهر کام عقلی گرسند مهاند کردیم اونی که از عباراتی ایشان استفاده میشه بحث حسوب قرد یا عباره حسوب قرد و جیت قرد یا عباره مهجیت نیست بحث ایشان اینست که به استدلال عقلی به دلیب عقلی میشه اعتماد کرد، از اعتبال که طابسوند و خود ایشان عباراتی رو از علمای صابر مثل شهید سانی مثل محقه از اینها آوردن و نتیجهگیری خود ایشان اینه که مراد از احب در اصطلاح ایشان مجموعه یه اصول و عصوبه. البته ایشان یه مقدار که عبارات کردن مشخص کردن مشخص رو با و دو حصولی ها عبارت نصفاً طولانی از ایشان خونجی مرات تخفیصش خود اون مواردی رو که حکم اقلیز و اطلاع خود ایشون حدود 11-11 مورد ذهب کردن که آخرشان مساله مرسله بود این مواردی بود ایشون با عنوان حکم اقل پس مراد ایشون هست عدم حجیته اقلن بخص تر فرق باشه زن. بحث تر و زن بخص سر یک اصوله با عنوان یک دلیل در اصول در استنباس احکام جا نداره این خلاصی وقت اون وقت این صغریات اقل در اسطلاح ایشان که از عبارات اهل سنت عبارات علمای ما از مثل محققیت مثل از اون عبارات گرفتن من نخوندم برای بقیه یه مقدار زیادیشون از عبارات احل سنت رو هم نقل کردن محصوصا اون کتاب نهاجر و شرقیشون شرق ای این کتاب یه مقداری از اونجاهایشان از نهارو کردن بعدم اصلاح کردن که مقاله رو که اصحاب گفتن در حقیقت از اونها گرفتن حالا با این مقالب تردیمون تشکیم ما یکی از موارد ایشان رو نسبتا متعرض شدیم اون وقت ترجیحات بود اصلاین راسته ایشان در اینکه که در مرجحات در کلمات اصحاب مثل علامه آمده که در اصلا کتاب نسوده که اینی که این رو ما عقلیه سر بدونی درستیم وقتون تر این قسمت رو. چون اصحاب متحصده ما از اون شکل در بحث ترجیحات به روایات تمسا کردند، اهل سنت روایت ندارند. چون روایت ندارن با قول خود خودشون به حکم هم بود اما در بعدها بعد از مضمون استعبادی اصحاب ما در بحث تعارض به روایات تمسا کردن اصلا اون وجوهی رو که در کلمات مثل الله هست اصلا متعویز نمیشن اصلا کلن متعویز نمیشن اصلا این بیانسی نبوده روشون هم روایت باشن خب اونم مخواستن بگم نه. نه کافی نیست این ترژه هم کافی نیست <تصحاب> و از توضیحش هم عرض کرده که حتی اون مقدار هرچی رو که علام فرمون بعضی از مترخیلی قبول کردن و که به این عنوان عملاً روایت اومد دهنزلی ده رو به عنوان یک میگار قبول کردن فه این المجمع علیه اینطور فهمدن هر جا دو خبر داشتوشین که اهده همان به خیاس ال آخر لاری بفی بو احسو کنه. و به اصطلاق خودشون از مرجحات منصوصه تحدی کردن پس اون وجود رو که اللامه ذکر کرده چل پنجاه بحش یا مثلا اهل سنت هشتاد ذکر کردن میشه با این نکته کلام لان اس قبول نداریم میم میشه گفت و گفته شده بلفعلا گفته شده ما میتوانیم از مرکهات منسوسه تعدی بحث من فعلا بحث ترجیح نیست اشتباه نشه نهمیخام وارد ترجیح بشم میخوام این کلام مرحوم مله این اضطراباد که این وجوه ترجیح ها مستند به و و اصحاب ما مثلا حدیم دین کردن این درست میزن ما همینو این مستند به روایات هم هست اول فکر این هم باید قبول بکنیم انصافت فکر کنم. این حملات توند مولا محمده میرسی سبب شد که اصحاب ما به بیشتر بودیاند این احتمال شکل انصافه تا قبل از ایشان توی مباحث ترجیح ها به این روایت هم از نشده مثلا در معالم عورده روایت گفته استنادن الى روایت ضعیفه مثلا متعرضش نشده قبول نکردن تقدر یعنی در معارج اشاری داره در محقق اشاری به روایت داره وان تعدیل به میکنه بخواسته همین عمر نهنده لگه سوسیمه شد و سوش هم واقفی هم داره راوی قبلش واقفیه امیتونه ما هر دوش رو قبول واقع بوده رو هم قبول نکردیم روشن نیست خود رسالات هماردون ما دوده انشاءالا واضحه از خودم که حالا بارد اون بحثی می میخواد بشه انصافا بعد مولا محمد امین استرابازی اون اتجاه کلی اصحاب این هستی پرگیه ها رو از روایات بگیرن این خلازه یه برست کم شد نه ناعدد اشانات احوایه نشاب شد شد باشی برای بر دقیقا فرمونید و ادهی می میدونید مثل کفایه که اصلا به ترجیحال عمل نکردن اصلا صاحب کفایه محاطبه ما مخیردی فرند ایشون از ترجیحال مخالفت آمنه و محاطبت آمنه را قبول میکنن با محاطبت کتاب اونم مرجع نمیدونه ایشون مقضم حجیت میدونه نه مرجع خبر مخالف اصلا حجت موافق حجیت نیست به. ترجیح نیست که حجز هر دو حجز باشه این که ترجیح بود بقیه ترجیح هاست مثل شهرت و این جور چیزا اینا رو بهشون قبول نگردن هم دارم استحباب کردن بالا به در حضرت موکان که انصافا در میان و تحقیل نحض ها این نقطه رواج پیدا کرده در این مسالانی که ایشان به شدت هم کردن، این مسائل رو یا قبول نکنن که قبول نکردن یا اگه قبول کنن در حیطه روایات قبول کنن خود دلقت بکنی؟ یا قبول نکردن سهت یاد یا به مقدار روایات قبول کنن پس این هیچ مشکل خاصی در تقریب دین نمیاد این قواهد اصولی به خودش ثابت بحث دوبارم براعت بود که حسابا خب براعتم در کلمات ده. در کلمات رسا برون دلعه اقل براعت رو من در روز گذشته از کردم راجعه به براعت چون اشکال مولا محمد علیه سرازی از شما شده براعت جانب بایین که هر واقعی داره بکنه این اشکال به براعت مولای نفیه بکن واقعا میاد که شال اهل بوده خب انصافا علمای ما به این قائل نیستند مثلا بعد از زهیر بلوانی میگن احکام واقعی هست اما منجد است تا به ما نرسیده منجد بحث سر تمجز اکان من رفت و بر فرزم در این جهاز شکل بکنی اقاب ور او اقاب بلا بیانه چون اقاب بر عنوان تمرده با عنوان احتمال تمرد صدق نده این خلاصه ترحیفی کرده از افتاد سالت بعد از وحید خیلی از این جهن که آلا اسمشو بکنه عقید روزشن به حدیث رفت هم از ساکرده رو به هم اومدی مال باعث از اون که حدیث در سندی از دنیای دلالی به حدیث حج معرب الله عن العبا قوه موضوع آن ماكون موضوع راه ما حدیث حج رو انسو کردن از حدیث حج دلالت نداره اصلاً و این متن نیست معرب الله اله موش باشه حالا اون بحثه مفصلی که جای خودش ان شاء که مشکلات فراوانی داره یکی این بحثشن. پس اون شدت بحثی رو که ایشون محره فرمودن اون محره نیست و بعد سراغات هم در بحث زیروز عرض کردم که وقتی بخواهیم بودی ترجیز احتمال فکر بکنید از زبادی مختلف فکر کنیم این نکته هم چون نقطه لطیفیه تر می شادن مثل اینکه دو ماه پیش هم عرض کردم بعد هم توضیح هم عرض بکنم یکی از فوارد مهم بین اصول و اماراتی اینه در امارات زاویهی برخورد نمی کنه. در امارات برخورد در خورد واقعی مثلا میگه زید بچه داره یا بچه نداره یا مثلا در حرم بازه یا مثلا, این ما مثلا این کتاب پاکه این عبا نجیفه مثلا برخورد برخورد واقعی اما در باب اصول چون تعبده چون به اصطلاح ابداعه خواهی نخواهی زاویه خاصی رو در نظر می این طبیعت اصوله اینه من توضیحش ارز کردم این در ذهن وارد باشه چون الان بیشتر در ذهنانی که مثلا روح زمه اول خالت و سارو شد در استثاب قدیه هاست در خمکه اصول به و سر اختلاف و اصول رو هم توضیح دارید چون این خیلی در وطفه وردی اصول محصره این نکته شد من یه مثالی ارزدنم همون مثال رو باز تکرار میکنم تا اصلا شما از بازار خریدی. از امام سال میچ پا رو شک کردنی پاک یا نه حلال یا نه خب اینجا سه داویه از بیشترم اینجا سه سه داویه میشیم امام میتونه سه لحاظ و انجام بده هم به لحاظ اعتبار قانونی هم به لحاظ تعبیر. مثلا اگر بخواست امام بگه چون شکداری حسارات عدم تسکیه جاری میشه استثارات عدم تسکیه اینجا چی تعبیر میکنه؟ میگه تو اونجا بودی که قصاب درست سرک برزی یا نه؟ تا این ظاویه او برد. تو اونجا بودی قصار سرکی بودی؟ یعنی اصال تردون تسکیم وقتی برد و حالت لحاظ قصاب یعنی شک میکنه در حقوق تسکیم و طبیعتم اصال تردون تسکیمون خود استثابه و اصل تنریهی همه است راه دوبار ممکن است امام بگه که تو از دست یک مسلمان خریدی اونی که تو بازار بود بازار مسلمان ها و شخص مسلمانی بود معامله تک امام میبون میفرمید یعنی اون حالتو امام من تو از دست مسلمان نگرفت این اسمش قاعده سوق مسلمه یا قاعده ید مسلم این هم اصل تنزیگیست این نقطه تنینی ما چرا عرض کردیم چون خربه چرا اینجا با قائده سوبرموسیم اصلا از الان تذکیه جارمی میشه که من اشاره کردم تو بحث عقیق با این تقریب ما خیلی روشن شد اصلا نظر نمی کنه با حال تذکیه بردان تذکیه خوب دقیق کنی نظرش بردون وقتی که شما گرفتین این هم با موقعه ده حالت سوم اصلا نه اون حالت اول نه به دوبار نظر همین الان میگه گوشت بخوا خوب دقیق کنیم امام به گوشت بخور این گوشت بخور دقت کنید، کدوم حال در نظر الان گوشت خرید تو خورو مقابل شد این حال در نظر است. اگر فرموندن گوشت بخور این در حقیقت امام اصل غیر موضع نه نفرموندن که آیا مزکا هست یا نه این فرموندن اصل موضع غیر باشد اگر فقط جری عملی بود میشه غیر موضع اگه تشخيص موضوع بود میشه موهر یا اعتراض میکنه عدم تشکیر، اعتراض این اعتراض تعبودی ادعایی نه باقی. یا اعتراض میکنه تشکیر مثلا از نظر مسلمان یا اصلا نظر نداره، نه تشکیر نه عدم تشکیر میگه بگو، میگه گوشه خریده، خور. انا ادم خنچاکم، من میگم بگو، این بگو که پس تصدیقش بکنید، این نکته خیلی لطیفه که در باب وصولی چون واقعی نیست از زاویه معینی بررسی میشه در بحث تو قرارداد شد. اهل سنت واقعی حالا ببین تکیه میکنم تو برابر اهل سنت واقعی بررسی کنه نه زاوینی نیست میگم اگر در کتاب سنت نبود روایت نبود در قول صحابه نبود پس این نیست این شرع جایز نیست شک در شریعت میگه شر نیست شک در جزئیت میگه جزئی نیست شک در معنی نیست شون دستگیر شد که نامه داره روایت نامه دست سابق کدی خیلی که کرد. این دیگه زاویه ای نیست. این همون مربی است که محمد اینی اصلی اشخاص می‌کنند که بارها واسطه‌مان یاد سوده. تکرار کرد. از ما از راه دیگری وارد شده. اون هم تقریباً زاویه ای نیست. چرا؟ اصحاب ما از سابق ما مثل بعد از شیر مثل ها از این زاویه وارد شده که. خود خدا قرمون خود پیغمبر و خود شهید من برداشت من شما ظاهرم اونم یک زابیه اونم زابیه نیست اینی هم امروز را یادارم که این کتاب ملاقا عمال اینوی بیارم خواست دارم بیارم و گفتم مرحوم ملاقا محمد در صفحه 23 از این چاپی که من تازه چاپ, چاپ شده جامعه درستی در اونجا داره و من اعجبا اجائب شومه که شهید اول در ذکرا فرموزه است که اساس البابست توفی دلقه هست بعد خیلی عجیب سنوش این همه رو باید داره که الله کل واقعه ده نهو چطور توفی دلقه هست من ذکره پیشم بود نشد مراجعه و همون چاپ غلیمه چاپ جهه شما حواله به چاپ جهه دو نشد مراجعه کنم لیکن اگر الان تقدیر صدر نسبت و چیزی قبل و بعدش حفظ نکرده باشه مراد ایشان توفید القرد به وزیفه ظاهری نه توفید القرد به واقع اگر مراد, اگر اگر مراد ایشون به واقع باشه خب با مناسب با احنسانت راست این اشکال باید انصافن هم انصافن هم بر ما تحجیباوره که شاید اول چید توفید القرد خیلی این مرد میشه فرص کمی روشی در اون زمان ها چیزای خاصی خاصیه باید میشده گردالومی که ما الان تو ذهنمون میانم حلایه هایه مگر مرادویشان وزیحه ظاهری باشه نه وزیحه واقعی بعدم ارز کردیم اصل بحث اون صلب بحث به استثناء این دو جهر صلب بحث تنجیز و احتمال یا تنجید و محتمله این صلب بحث یه دفعه ما از صلب بحث که حالت میشه میده و از اطراف مثل هفتا تا اه یاده که توضیحاتش بودن روشن و انصاف قصه اگر ما گفتیم احتمال منجز نیست هم حکم عقل نیست یه سیره اغلاست این فهم اغلایی یعنی به عبارت اخراب من توضیحش اول این بحثا اما اولی که درس شروع کردیم رو ارز اصولاً اصولا اغلا هموندن برای اعتباس قامی مرحله جعل تصور کردن یک مرحله ابلاغ رو تصور کردن امزاب رو ارسال رسول رسانه شدن یه مرحله وصول به مکلف رو سوال کرده که اسمش تنجوزه این هم اینطور طور که دیگه حکم اولیه اعره باشه ممکنه بگه تا شار ادلاسه تنجوزه باشه ممکنه مشکل نداره جامعه در نمیخوره که محدود میشه نه واقعا جامعه های محدود میشه این کارو بکنه تا خیلی بنای و اوغلا ما یه بنا این چه چیه یه هم همه ما یه موجودی این ولی کذا نه چیزه همه این خوب دکت بکنی آمدن گفتن جم بعد مرحله انتظار یا رسانی بعدم مرحله ای که وصول مکلف باشه بعدم خوب خایده های یا احسانیست که از مکلف این وصول مکلف به اصول شان آماده هم گفتن این تنجز با یک صورت واضحی در ذهن باشه تا اون صورت واضح نمیده تنجزه نمیده اون خلاصه یه براحت این تنجزه نمیده آماده هم گفتن اگر اینجا واضح نشد اقاب درستید مثلا اون مرحله آخر احساسی ما میدهیم نمیخواد تا محلی آخر بگیم ما اول میدیدیم همون اول و این تمام هم تمام حرف من نقصه برمه نمیخواد من دعای براحت ب تمام بحث من بیانه اینه که این اولا عقلی نیست این سیره و اقلاست تفسیر وقت هم به شاره نداره رفتی به شریعت مقدسه نداره بالا فیال که هم دست قبعه مال شارع است، و حقصهای مال شارع است، اصلا وقتی به شارع نداره این یه سیره و که یک مقام جل دو مقام رسانهیه سه مقام وصوله به مکلفه. تاشنده ای در خب ای این اتیاش... ای وقتی... من اینکه یعنی مسلمان دیگه نکته میخواد دیگه احتیاط اختیار خودش قاعده ایشون میتونه از روایات بگیره شاره یا نه اه قبلا اخباریا میگن از روایات می من دارم قانون تفسیر میکنم خب این مخواه بحثی روایات بحث روایاتی که برد ما اون بحثی نسال مفاد روایات احتمال بازه یا احتمال بسته خب مفاد روایاتی داریم روا. عزیز من من بحثم خدشیه این است که اولا دیگه یک سیره اغلایی داریم نه که عقل سیره اغلایی داریم شما میگه این شارع تصرف کرده. بعد اصلا حکم عقلی نیست که ایشون خیال کرده حکم عقلی شارع بکنن. وقتی سیره اغلاوی شارع نیستونی به بکنن. خوب دقیق بکنی؟ تقریب وقتا این یک سیره اغلاوی حکم عقلی مثل استحاله اجتما نقیده ایشون بگه این همه رو بازمونی چاکم حکم ه شارعی میشه که نه شارع هر قانونی میشه بگه. بود. این که مشکل نداره. ترجیح به گنتی میشه که انسان زنجیر احتماله. گرفته به مشکل نداره که <تصفيق> این حکم عقل چطور میشه رواخلاب عرض؟ حکم عقل حکم سیره و این جواب این نکته رو من به حسابات در دوره اول در بحث احتیاط شد, شد به ذهن خود هستید تنها باشد تمام روایاتی رو دانه دانه که مرمون صاحب و صاحب در موجوب احتیاط در اول, اول بابت هستید هم بوده همچید من الباب الهران همه رو خون بیدیم دانه که شدت هست داره واید سندن به اصباد کنید شاره هم جرم نگردی خب این بحث دیگری نیشون حرفش کیه میگه شما میگید به حفم عقل او گفتت به حفم عقل براحت با این شاره شارع گفته یا با حفم عقل نمیست بابا اون براحت که تنگیز و بشه تیره و بنای بنای و شاره شارع و هر قانون گزاره قانون محلگی همیزون چون روشو بگیرون ما شیر ببینید ما پیروز همین صحبت کردیم اگر یادتون مثلا یکی یا مثل نمیخواد قرمخواسته همین که وجود در ذر محترم خب شه جواب شده که ذر محترم اگر عقاب باشه اون مغلوب بر تنجوس اگر چیز میگم باشه که معنی کلامه ببین شما نکته نکته رو, ب... رو دقت بکنید شما می روایات اومد اشار خیلی خوب این تناقض نیست مشکل نداره چون اونجا سریه غلط نه مطلب اخر چیه این بحث از خیالا من اشاره سابقا کردم از اوائل خرم دوم این صحبت آمد که بعضی از چیزها با شریعت نمی سازه. این دعوای شریعت و دین علم و دین این صحبته که هم دارم فلسفه و دین افان با دین چی با, با, با, با این تناقض داره اقل یک چیز میگه روالا چیزی میگه نه از من اقل اینجا برای نیست یک مقال این سیره افتیاری به قابل آبایان نداری درست به چون این ریشه اونه اصل محتمل تنجز فیدان نمی احتمال باز صورت ذهنی درست نمی کنه احتمال من احتمال بی بیاره این احتمال باز نه قانون مقام دیگه نه از ما شما میگی روایات شریف مصلم نه رवायات مخالف عقل نه مخالف نیست فقها هم قبول دارند که یک قانون میتونه که دیگه واجب هست میشه چه خوب دقت بکنید ممکن است یک قانون یک قانون عام یا قانون تو شهر قم مثلا یا سری اشیاء معین میشه تو مصلم این تناقض نداره با اندوی قابل جمع این تناقض با هو به نداره اونجوری سیره است برادر هر طور از اینو بیشتر نظری کنم به عقلی که مثل وحید بهبانی چون من قهر بلا ابا از مصادیق ظلمه برنده تو عقل عملی ما اصل تو به عملی چون شو, شو عقل عملی خوب یه سیره من سیره واسه در سیده اقلاق کسرشون ما خاید مثلا شما باش صحبت بکنه به اونجرال اینکه احتمال این مخصول شما دو دنبازش این نیست نه در عوامار شخصی مطلب را... نه در عوامار اجتماعی زنها اقلی ناوالی... با ملاتات عرض هست نه ملاتات عرض قرد بکنه زنها اقلی با فرمش با عرض جش اینجا شد تو نمیخوام باید این برد ریشه‌های های عقلی داره اما چون سیر جامعه هست و مثل تقصیل در نظر میره خیلی اون دخت های عقلی رو سوش بعد روی رشد جامعه در نظر بیگه نه فقط بخواد تناقضی لازه بیار میگن اگر جامعه بنا باشه و احتمال بود و بزنیگی به هم بیخوادی بکنه و زیوره احتمال بوده و دوبال بزنیگی به هم نمی‌خوره. اینا امانند برای تنظیم جامعه گفتم یک احتمالی باز در ذهن شما باشه اون احتمال منجزه احتمال باز منجزه یک صورت واضحی در ذهنتون باشه کنجوس تابع اون صورت واضحه مجرد احتمال حتی 30% 60% 55% هیچ چیز 60% اون صورت روشن شد شما اما این منافات نداره که قانون گذاری به احتیاج بکنید احتمال منسجزه چه اشکال کسید؟ چه موشد؟ نه اولم اون ارده اولم ها اشکال فقط به محمد استرابادی نیست اشتباه به محقق حلی هم هست به علامه حلی هست گفتن منر اهل به شیر سالی هست منر ارده برایه برایه تابعه ها من ارده بز. مورد شد من یک احتمال دیگه اجازه من ارده میکن هم ولی اگر مدالشون این باشه که نیست این کسی را بله من از کردم من چهاران هستم من این جایزا مقدله ما احساسمون اینه در اصول وقتی میگنه اقل اینه از لبز مستقیم فرمیده نشه ظاهره نمی دیگریه چون دیدیم علامه مفتوم موافقت و مخالفته چون گفت هم ما محقه محقه <تصفيق> مثلا آیخونی مثلا این برد مقدمه واضی به تو سا این رو یه اصطلاح بی ظاهرن یه اصطلاح باید در اصول باشه خود دقیق کردید هر چیهی که مستقیمند از لب خود دقیق کنید استفاده نشه یعنی استفاده میشه اما مستقی نیست خود دقیق بگمید استناد سریع نیست این اصطلاح شهر رو میشه مثلا این جا اینجا که زید و سرکم و حق خب که اگر آمد اکرام مفاد دیگه چیمی که اگر نه آمد اکرام اگر نه آمد تو این مقدار رو حکن عقل دیم خب خودی این بارت خودی. خون بید ملازمه رو حکن عقل دلالتی کیما و تنبیل و اشاره رو حکن عقل گرسه محبوب محافظت رو حکن عقل مقدمات، مقدمه لازم ترجیحات رو حکن خب این مرادشون از عقل اصطلاح جدی می‌ندازند تا جایی که تحسیح ندارن. برات که این, این, این مکتوب ای داریم نیست، وفاداری نیست، مایه بحث عادل داریم، یه بحث اقلاب داریم، یه بحث مداریه کلام داریم، مداریه اولی کلام، مداریه صنفیه کلام داریم. ها، حالا روشش از چه؟ کارا من شروع کردم که این بحثیه از منابشه با اخبار و همین که جز از یه قوم مراقبه. اگر می‌جوره یعنی یه معنای دیگه پیدا می‌کنه منظور مولانا در این است که از, از این ابحث و مسائل مرسلن جزء شده این مصادر مرسل همون که الان بیشتر مراد ما از عقل همونه الان مراد ما مثل عقل قوی نویشان مراد از عقل مثلا که عقل حکم به حس بکنه اصلا بیشتر مراد الان تو ذهن ما مثلا این کار حسنید این کار خیلی خوبه الان ذهن ما هم همین مسائل بولسه 12 رو بر اون سال اسم شما را از این تا یکیش الان بیشتر مطلع نظر ما در عقل و اون مسائل مرسله <تصفيق> اما تو عبارات خ... عبارات اون چیزی که عباراتی که اون عبار دید. چیزهای رو به اسم حکم عقل کردن که که انصافا واضحه نیست ترجیحاتش رو ذکر کنید بر هر که ملا محمد امین استال و اخباری یا این هست که در موارد تنجیز احتمال شارع گفت احتمال منجز ازامسان شما شما کردی؟ شارع فرمون منجز ازامسان بعد دقت میکنید. اونجا باید باید شیم بررسی بکنیم؟ اون روایت رو بخونیم؟ بگیدون شارع احتمال منجز قرار داری جادن؟ دیگه تشمی به دیمانه بگرام حدیم مخالف این ها مخالف با روایات و متواسر اخلقه ای تو این حرفو نداره که پس ما یه قاعده کلی و این قاعده برای اثر هم از این زاویه یک زاویه واقع یک زاویه رفت احدیث مالای علمان بود یک زاویه احدیث عدم از تنجیز محتمل یا عدم از احتمال اگر هم خیلی خیلی شکرد که این برده قابل آقای بگمه اقا بلاده یا اون نتی خود بایده تمامه حرف مولا محمد در اصداره که شعر ایجاب احتیاط کرده این احتیاط از کدر شاید من نید کلمات این که من در وحث دوره اول از اول اون با 67 تا حدیثه دانه دانه سندن و مثلا خونده شد گفته شد که خیلی آزهی که سنده و از اونها اثبات این احتیاطی که ایشون فهمدن در نمیان این در نمیان این مطلبی که ایشون نمیاد. براهک با آیات مثل فتح الله مرتضی هستند با آیات هم ازشون گذرد فتح الله مرتضی هستند نه از آیات در میاد نه از روایات اصلا ما در محل خودش که این عبارت تکرار شده شیف در پنجمی حضورش داره در برابر شوال لا به حضن حسن احیا ال اعلن و شرها ما اصلا هر داشی گیج شدیم نه حضنش اعلن صابدنه اصلا شرها ام دادیم پیش کلمه ام احتیاثاً به این معنا که انسان احتیاط جمعی محتمل خوب احتیاط را خوب به خرج بکند چون احیاچ چند تا معنادار خطاب کردن گفت احتیاط یعنی احتیاط جمعی محتملات این نه عقلا حسنش ثابت که انسان وقتی چه سر این کارا بکنه نه شرم او ثابت است پس که این نامه نامه لطیفی به الجامو شاد بش چند به از کردن مرحوم اخو مولایی که بدانی که و, و زمان خود که جای بزرگواری هم. عمر طولانی هم دارش نامه نامید رویزه خانونی نیسته پسیل یک شکو شوهر حالا اواخرام از سر سالشون بعض از عبادات ساداشون های احتیاطاً حاضر بکنم من اون که احتیاطو حس ندار چیدهی که احتیاط شما به این اعمال صابر درست نبوده بخواه انجام بدید خلاصه به این فیلسوف و فریهی طوریه فیلسوف و مال احتیاط که با <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> کالبر اکسل میگه اینا درکیه خیلی نامه لطیفه ایشون البته من به معذوبه میگه مجلله که شیخ خودش میگه بله در ذهن من کجاست اش شیخ انصاری نظری میگه میگه بله در ذهن غلط میگه انسان هم با محقق این و اینا هیچ چیز ثابت نیست اینکه لا راید فی حسن اخیار عقلا و شرع نه عقلا نه ثابت و شرع که انسان بیا جمعی محتمل هی پیش حساب بکنیم چمی و را عجب دده عشق که بله؟ حتی تو اهواز. خب بیا مثلا شش تا در زمان ما هر چیزی که من همه اینا انجام. خب برید رو سوشل میدیا هم تامین کنید. ما بودی که امر از بود. حالا بله؟ قبل بکنید یه دته کار خودش خودشم اونجا اجداد از تنجید علم آه. اون بستیم شما بینست اعتراف یہ اید شما احتراف شدیم ها اعتراف های نجمالی اتراف بگی فحبه هست فشک میهم یه نماز یک دونه انجام باید فیر دن می در بران امن داره اگر رسید به عدد مراجعه کردی نماز جمعه که و نماز جمعه هست باید اصفت بکنی که چی؟ رسید به عدد نه ببینید اشکال به چه معنا؟ خوش می‌دار که نه بود. خوشی لاره یکی و یه فقید که نواجمه فتونگی لوانسون می من از هر که اینجا نداره. چه وصل داره؟ من نه نه ببینید یک ج این سریع درست فرض کنیم مقابل اعلم دیدیم یا مقابل تخیی دیدیم این در این مورد که خون چی دو طرف خودش رو نماز جوونه باز رو احساس کردن می‌خوای درک به واقع حجت می‌خواد نه چون مفهمومی رو با حجت هم هست ها حالت به واقع حجت باشه ما اگر حجتش ما دوباره که اصلا ما و همه استفاده زندگی باشه در احکام سوالم تو این در احکام حالا یک آقایی مشهدی اجازه یک آقایی مشهدی اجازه بده یک میگه من اصلا مراجعه به عدلیام مراجعه عاشا نماینده ما هم از من چه کی کو واقع میخوایم من وجب این جمال برای وقت مراجعه کردن وردو رو باشه، تو نازو. در نه، ظرا بتون باشه، مراقبه. من اگر انجام داد نمازش درست نمیام باطله اما حس نمی نداره. چرا خب شما الهات واقعا اگه را انجام بده. دیگه احتمال میده. احتمال معنایی، اینطور نیست. اما این خلاصه بحث های بحث های تحسه برایت با که مرمون مولان استرابادی و قبل از اشمان استرابادی می هست و علامه هست, هست. اینا و از احباری هست این رو از بکت هر گرفتن اصلا اخواری دیگه اوغادار رو اصلا قبل دیگه به درکاری ببینید اخباری که مزار هست این در که میشه با شهاست چیده یه بسید ازش سوال میشه که از من گوید عقل و گوش و چیشون میدم چی می دلوش. دلوش. دلوش. دلوش. دلوش. دلوش. قابل نیست دلوش. آنکه دلوش. آنکه. آنکه. آنکه. آنکه. آنکه. یعنی اگه کسی ببینید کسی اگه در عرفیات و در فهم اوغلایی گفت نیمی مثل اصول در فلسفه چون میشه وقتی که وجود نداره ناموهومت کسی بیا سیری واقعا این کار بکنه میشه امکانو وجودی وجود تئوری گفت قبلی هم من که گفتین <تصفح> اونجا من روابط خودین تئوری ما که روابط وجود نداره دیگه به اوغرا کار ندارن سیره سرشو نمیشه آقای خب نمیشه که سیره سرشو نمیشه این اوقاتم قیل خب سلم نا من من نگفتم من چون عقیده نیکره روایات تمام نیشونم باید عقیده من من مخوام حصل نظار بکنم بحث سیره بسن. بحث روایاته اون میگه روایات در سیره مقدم من میگه اون روایات روشن خب روشنه بر دیگه قرقی قرقی حاصل حجه این بحثا نیست شد. این سنت بحثی او به عقل است قبل از ایشون بگن عقل است بعد بگن روایات آمده روایات با همه مخالفه او بگه بس مرموش شیخ انساری نه ایشون گفته قسطش خود جد نیست نه قسط بگذار هیچ کده نیست روزنیشون من شما هیچ کده نیست یک سیره اوغلاقیست که باز خود اون آقا میگه من از روایت ترمیده که شارم این سیره ارجاع نمیده گفته وجوبه ما با هم درمان داریم که اون بحث کجا میشه بشید که بیمه روایت بکنید آیا در میاد اون مفتل در میاد دیگه این بحث ها نید این بحث. نهلی بحثی که الان قدره شده که بیم گفته قطع حاصل حجت نیست نبیدی خرق حاصل نمیشه دیگه این صدا در دولتی که در مقرر نه اخبار و سینه و قلالو در سراغ رقایا. یعنی که و علم انسان بیرید. برادر همین مضمون اینه که نورالدین از میگه شما مبالات و نگاه نکنید. این علم علم نگاه ببین چی هست. این رو نمیگیو نگاه یعنی ادم نگاه نه مردم یک قانونی دارن که میشه این کار کرد یه احوالی این هیچ. یعنی هیچی نه اجازه بدیم این در میان و اورا هست یانه شاره گرفته چند می رود می‌گویند میکنه یا بهش میگه مثلا کلا یا بهش میگه مثلا کلا موجب عقل موجب تعقل میگه به نه چه بلایی شده چه چیزی موجب خب نگاه کن اچیه؟ نکن که مردش کاتی نبودی زوره بی باشه. بهتر کات او هودی، او اصلا نیست من خب میدونم یا نوشن شد؟ ما از قبلم دیوتم باشیم. این نیست این کاره بات که در صورت مقابل در کورس مقابل در هر. اصلا این نیست کل این نیست خود مرد ملا ما چون چون از دوستون سریزه، اون جزء اصلا این بحث بحث تعریفی نیست بحث اولایی چاره‌ای میتونم روش نهی بکنه ادعا شده ارقم در جمع جنگ در اهد 67 در حدیث مشهور یادারণی قرار نیست 67 در حدیث رو آورده نشم لكن گفت این رو بذاتن بحث دیگه‌ایه دیگه اولایی اون وقتی سوغراگی تاثر یعنی روشن شد این نظری بحثی که بحث استاد مطرح کرده ناوی مطرح کرده شیخ آورده خب اصل این نیست, نحلی بحث. نحلی بحث. این نیست. مجرور چیز دیگری تا به اینجا ها نمیرسه فرده بیشتر که این طبعا موظم و مطلب طبعا وارد ملازمه و شیطا ملازمه در اصول ما جا کرد این مزار یه وارد خواهده خواهده ملازمه ملازمه هست یه دوستا توضیح مسئله بعد رسولی رو میدن که روشندتر بشن